بسم الله الرحمن الرحیم برام خداوندی بی اندازم اکربان نهایت بارح باکو منزه هست ذاتی که بنده خود را شبه از مسجد حرام و مسجد اقصا که همه را با برکت صافتیم بود تا به او از آیات خود نشان بدهیم بیگمان او شنو و بیناست و من را کتاب دادیم و آن را هدایتی برای بنی اسرائیل گردانید و گفتیم جز من کو سازی برای خود مگیریم ای فرزندان کسانی که ایشان را با نوح در کشتی برداشتیم بدون شک نوح بندهی سپاسگزاری بود و به بنی اسرائیل در کتابشان خاطر نشان کردیم که در زمین دو بار فساد خواهید کرد و سرکشی بزرگی خواهید نمود و دو بار مجازات خواهید شد چون موعد نخستین فرار بر شما بندگانی پیکار جوی خود را می گماریم که تا داخل خانه های شما را جستجو کند و این وعده است عملی شدنی سپس شما را بر ایشان غلبه دادیم و شما را به دارایی و فرزندان مدد کردیم و برای شما نفوس بیشتر دادیم اگر نیکویی کنید به خود نیکویی می کنید و اگر بدی کنید باز هم به خود بدی می کنید پس چون بار دیگر موعد معافظه شما فرا است و من کنیم که در نخستین بار کردیم تا بر چهره های شما آثار غم و اندوه ظاهر شود و باید دشمنان شما داخل مسیر احسا می شود و منگونه که بار اول داخل شده بودن و بر هرچی دست یا بند آن را تباه می کند شاید پروردگار شما بر شما رحم کند اما اگر شما با گناهان خود برگردید ما هم به مجازات خود بر می گردیم و دوزخ را برای کافران زندان ساختیم بگمان این قرآن براهی که استوارتر است هدایت می کند و مسلمانانی را که عمل نیکو انجام میدهند، بشارت می دهد که برایشان پاداشی بزرگ است و کسانی که با آخرت ایمان نیاورده اند برایشان عذاب دردناک آماده کرده و انسان به و به گنه می که باید نیکوهی را طلب نماید و آدمی شتابکار است ما شب و روز را دو نشانه گردانیدیم پس نشانه شب را مهو گردانیدیم و نشانه روز یعنی آفتاب را روشنی بحش گردانیدیم تا از پروردگار خیش طلب فضل کنید و تا شمار سالها و حساب را بدانید و هر چیز را به تفصیل بیان کردیم. شعامت عمل هر انسان را به گردن خود او بستیم و روز قیامت کتابی را برای او بیرون می آوریم که آن را گشوده می یابد برای او گفته می شود که کتاب عمال خود را بخوان خودت امروز بر خود به حیث حسابگر بسنده ای. کسی که رهیاب شد بیگمان به فایده خود رهیاب می شود و کسی که گمراه شد بیگمان به زیان خود گمراه می شود و هیچ بردارنده بار دیگری را بر نمی دارد و ما هرگیز کسی را عذاب کنیدن نیستیم تا پیامبری را بفرستیم و چون بخواهیم دیاری را تباه گردانیم توانگران سرکش آن را امر می کنیم تا نافرمانی کنند پس بر آن دیار حکم عذاب عملی می شود و ما ایشان را به گونه شدید درهم می کنیم چی بسا کسانی را از نسلهای بعد از نوح هلاک ساختیم و پروردگار تو به گناهانی بندگان خود به حیث دانا و بینا و بسنده است هر کسی چیزهای زودگذر این دنیا را خواسته باشد ما در دم چیزی را که اراده کنیم برای کسی که خواسته باشیم میدهیم سپس برای او دوزخ را آماده کرده ایم در آنجا نیکوهی دو رانده شده خواهد شد. و هر کی آخرت را بخواهد و برای حصول آن سعی خود را بکار برد و او مسلمان نیز باشد پس سعی چنین کسانی پذیرفته شده نیست از عطای پروردگار تو هم این گروه و هم آن گروه همه را برخوردار می سازید و عطای پروردیگار تو از کسی هرگز بازداشته نمی شود ببین چی بعضی را بر بعضی دیگر فضیلت داده اید. ولی بیگمان آخرت بزرگتر است هم از روی درجات و هم از روی فضیلت با خدا معبود دیگر مگیر ورنه ای انسان نیکوهی دو بیچاره زمینگیر میشه شوید تو حکم کرده است که با جز او هیچ کسی و هیچ چیزی را پرستش نکنید و با پدر و مادر نیکی کنی اگر کسی از ایشان یا هر دو ایشان نزد تو با بزرگ سالی می پس به ایشان اف مگو یعنی کمترین احانت مکن و بر ایشان بان مزند، بلکه با ایشان به سخن سخنزن و بر ایشان بالهای توازوی خود را با مرحمت بگو و بگو پروردگارا بر, بر ایشان ببخشان همچنان که مرا در خرد سالی تربیه کردن. برویدگار شما و آن چه در دلهای شماست بهتر می داند اگر نیکو کار باشید پس بگمان خداوند کسانی را که به سوی او رو جمعه کنند یعنی توبه می نمایند می هر حق صاحب قرابت را بپرداز و نیز حق مسکین و مسافر، اما از اصراف خودداری کن مشرفان بیگمان برادران شیاطین هستند و شیطان با پروردگار خود ناسپاس هست و اگر از ایشان یعنی ناداران روی برمیتابی که نادار هستی و در انتظار دریافت مرحمتی از جانب پروردگارت می باشی که امید آن را داری پس با ایشان سخن ملایم بگو دست خود را با خیلانه و گردن خود مبند و نیز به آخرین حد آن مک به هدی که ملامات تو درمانده شوی و زنینگیر گردی حقا که پروردگار تو روزی را به هر که بخواهد میگوشاید یا تنگ میگرداند حقا که او به مسالح بندگان خیش آگاه و بیناست و اولاد خود را از ترس فقر مکشید ما آنها و شما را روزی میدهیم بیگمان کشتن ایشان گناهی بزرگ است و به زنان از دیک بیگمان عمل زشت است و راهی بدی است و کسی را که خداوند قتل او را حرام ساخته جز به حق مکوشید و کسی که به ستم کشته شود پس بیگمان وارث او را صلاحیت قصاص دادیم پس نباید در کشتن زیاد روی کند بیگمان او شرعن یاری داده شده است مال یتیم جز به طریق کنیکوس نزدیک مشری تا به نهایت قوت یعنی سن رشد خود برستد و به خود وفا کنید بگمان هر کس در مورد عهد خیش سوال می شود و چون پیمانه می کنید حق پیمانه را ادا کنید و به ترازوی درست وزن کنید این کار بهتر است و عاقبت آن می و و پی چیزی که به آن علم نداری مرو بگمان گوش، چشم و دل هر یکی از اینها مورد سوال قرار داده می شود و بر زمین خرامان یعنی با تکبر راه مرو بیگمان تو نمی توانی زمین را بشگافی و نه هم در درازی برکوها می رسی از همه اینها به نزد نزد پروردگار تو ناپسندیده است این راهنمودها از است که پروردگارت برایت وحی کرده است و با خدا معبود دیگر را قرار مده تا ملامت شده و رانده شده به دوزخ افکندن نشید آیا پروردگار شما شما را به پسران برگزید و از فرشتگان برای خود دخترانی گرفت براستی که شما سخن بزرگ یعنی نهایت زشت میگوید و بگمان ما در این قرآن انواع مسائل را بیان کردیم تا ایشان پند بگیرند ولی این با جز نفرت به ایشان نمی افزاید. بگو اگر آنچنان که می پندارند با خداوند معبودانی دیگر می بود در آن صورت در جستجوی راهی برای منازعه سوی خداوندی صاحب عرش می افتادند پاکست او از آنچه ایشان می گویند بالاتر و در نهایت بفرگیست او را آسمانهای هفتگانه زمین و آنچه در میان آنها است و پاکی یاد می کند و هیچ چیزی نیست مگر اینکه او را با پاکی می ستاید و لیکن شما تصبیح ایشان را نمی دانید حقا که او صاحب حلم و آمر است و چون قرآن را می میان تو و آنان که به آخرت ایمان ندارند هجاب نامرئی قرار می دهید بردلهایشان پوششهای می نهیم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان گیرانی را و چون فروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد کنی پشت میگردانند و فرار میکنند ما داناتریم به اینکه ایشان به چه چی چیز گوش فرامیده میدهند، هنگامی که به تو گوش فرامیده دهند و نیز هنگامی که با هم به راز و نیاز میپردازند در آن هنگامی که ستمگاران میگویند پیروی نمیکنید مگر مردی جادو شده را. ببین چیگونه برای تو ها زدن، پس گمراه شدند و توانی یافتن راهی را ندارند و گفتند چون ما مشتی از استخانه ها شویم و پوسیده گردیم آیا باز هم به با آفرینش نو برانگیخته می شوید؟ بگو آره اگر سنگ باشید یا آهن یا هر مخلوقی که در نظر شما بزرگ جلوه می کند باز هم خدا به زنده ساختن شما قادر است؟ آنها به زودی می گویند کیست که ما را باز می بگو کسی که شما را بار اول آفرید پس به زودی سرهای خود را به علامت انکار به سوی تو جنبانیده خواهند گفت آن برانگیختن چی وقت است بگو شاید که نزدیک باشد روزی که خدا شما را بخواند و شما ستایش او را اجابت کنید و چنین پندارید که درنگ نکردید مگر اندکی و به بندگان من بگو تا چیزی بگویند که بهترین است بگو من شیطان میان ایشان نظام میافکند حقا که شیطان برای انسان دشمنی است. پروردگار شما شما را بهتر میشه اگر بخواهد به شما رحم می کند و اگر بخواهد شما را مجازات می کند و تو را بر ایشان به حیث نگهبان نفرستادیم و پروردگار تو به آنچه در آسمان ها و زمین است آگاه تر است و بیگمان ما بعضی پیامبران را بر بعضی دیگر فضیلت دادیم و به زبور را دادیم بگو همانهایی را که غیر از او معبود می پندارید پس آنها توان رفع مشکلات را از شما ندارند و نه هم در آن تغییر ایجاد کرده می توانند آنهای را که کافران نیایش می کنند خود به پروردگار خیش وسیله می جویند تا کدام ایشان تقربی بیشتری حاصل کند و رحمت او را و از عذاب اومی ترسند حقا که عذاب پروردگار تو محل ترس است و نیست شهر و آبادی مگر آنکه ما پیش از روز قیامت اهل انرا شديد آن را حلاک کنندهیم یا ایشان را با عذاب شدید عذاب کنندهیم این ها در کتاب یعنی لوح محفوظ شده است هیچ چیز ما را از این باز نداشت که نشانه های قدرت خود را بفرستیم و جز آنکه پیشینیان آنها را تکذیب کردند و اشتر ماده را به صمود به حیث معجزه دادیم اما ایشان بر آن ستم کردند و ما با معجزات نمیفرستیم مگر تهدید را و به یاد آور وقتی را که به تو گفتیم که بیگمان پروردگار تو به مردم احاطه کامل دارد و ما آن رویه را که به تون مایانی نگردانیدیم نگردانی دیم مگر آزمایشی برای مردم و نیز درخت لعنت شده را که در قرآن ذکر است و ما ایشان را می ولی این ترسانیدن به ایشان نمی مگر سرکشی شدیدی را و بیادار وقتی را که به فرشتگان گفتیم به آدم سجده کنید پس آنها سجده کردند جز ابلیس ابلیس گفت آیا کسی را سجده کنم که از گل آفریدی؟ وی ای گفت آیا دیدی این را که بر من برگزیدی؟ اگر مرا تا روز قیامت فرصت ببیهی یقینا جز عده از اولاد او دیگران همه را از بر برمیکنم یعنی از راه حق به بکنار میکشم خداوند گفت برو پس هر کس از ایشان که تو را پیروی کند ایرومان دوزخ جزای شماست جزای کامل هر کدام از ایشان را که می توانی با آواز فریبنده خود به سوی تباهی برانگیز و با سواره و پیاده خود بر ایشان هجوم آورد و با ایشان در سروت و فرزندان شریک شو و به ایشان وعده بده و شیطان به اینها وعده نمیدهد مگر فریب را واقعا برای تو بر بندگان من سلطهی نیست و پروردگارت به حیث کارساز کافی است پروردگار شما همان است که برای شما کشتی را در بحر جاری می سازد تا از فضل او بحر اندوست شوید بیگمان او بر شما مهربان است وقتی که در بحر و شما سختی برسد آنهایی که جز خدا و ایشان نیایش می کنید گم می شوند و باز چون خدا شما را نجات می دهد و بخشکمی رساند و روی بر میتابید و انسان بسیار ناسپاس بوده است آیا از این ایمن شده اید که خداوند شما را در گوشه از خشکت او برد یا بر شما توفان شدید از سنگ ریزه ها بفرستد و سپس برای خود نگهبانی نیابید یا از این امین شده که شما را باری دیگر به ددیه ها بازگرداند تون بادی شدید به شما بفرستد و شما را به سبب ناسی پارسی شما خرق گرداند باز برای خود در برابر ما بازخواست کنینده نیابی بیگمان و آدم کرامت بخشیدیم و ایشان را به وسیله مرکوب های رهوار در خوشکه و بحر برداشتیم و به ایشان از چیزهای پاکیزه روزی دادیم و ایشان را بر بسیاری از آنچه آفریده ایم این به خصوص دادیم روزی که هر فرقه مردم را با پیشوای ایشان بخانیم پس هر که کتاب یعنی نامه اعمال او به دست راست او داده شود همین ها نامه خیش را با خوشی میخانند و به ایشان ذرای ستم نمیشون. و کسی که در این دنیا کور باشد پس وای در آخرت نیز کور می باشد و از راه بسیار دور است و نزدیک بود که ترا از آن چه به تو ویه نمودیم بسری بند تا بر ما جز آن وحی که به تو فرستاده ایم چیزی دیگر افتراک کنی و آنگاه ترا دوست خود بگیرند و اگر چنین نمی بود که ما ترا ثابت قدم گردانی دیم، نزدیک بود به سوی ایشان کمی تمایل نمایی آنگاه تو را دو چند عذاب دنیا و دو چند عذاب مرگ می و در برابر عذاب ما برای خود مددگاری نمی افتی. نزدیک بود تو را دشمنان از سرزمین تو دلگیر و ناآرام سازند تا تو را از آن بیرون سازند اما در آن صورت ایشان بعد از تو جز مدت کوتاهی باقی نمی ماندند این بود روش ما با پیانبرانی که پیش از تو فرستادیم و در روش ما تغییر نمیابی نماز را با کمال و تمام از هنگام زوال آفتاب تا تاریکی شب برپادار و قرآن بامداد را حقا که بامداد یعنی نماز صبح مورد مشاهده فرشتگان است و در پاس از شب نماز تهجد را ادا کن. نافله برای تو تا باشد که پروردگارت تو را به مقام ستوده قرار دهد و بگو پروردگارا مرا در هر کار صادقانه وارد کن و صادقانه بیرون کن و از نزد خود به من قدرت مددگار انایت فرما. و بگو حق آمد و باطل نابود شد حقا که باطل نابود شده نیست و قرآن را که برای مسلمانان شفا و رحمت است مرحله به مرحله نازل می کنیم و بسیطم گاران جز زیان چیزی دیگر نمی افزاید. و چون به انسان نعمت ارزانی کنم رو می و پهلود توهی می کند و چون به او شره می رسد ناومید می گردد بگو هر کس بر اساس روش خود عمل می کند پس پروردگار شما آنان را گراهیاب ترند خوبتر تر می شنازد. ایشان از تو در مورد روح می بگو روح از حکم پروردگار من است و از علم جز اندکی دادن نشده اید. اگر می خواهیم اونچی را با تو وحی فرستاده ایم ببریم یعنی بازگیریم در آن صورت کسی را نمی که برای تو در برابر ما کارساز شود و از تو دفاع کند مگر مرحمتی از جانب پروردگاری تو که فضل او بر تو بزرگ است بگو اگر آدمیان و جن همه جمع شوند تا مانند این قرآن را بیاورند هرگز مانند آن را آوردن نمی توانند اگرچه بعضیشان بعضی دیگر را در این کار یاری دهنده باشند و ما برای مردم در این قرآن به گناه های مختلف مثال آوردیم ولی اکثر مردم از پذیروستن چیز ناسپاسی ناسفاسی ورزیدند و گفتند هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا برای ما از زمین چشمه بیرون آری یا باغی از خرما و انگور از آن تو باشد. و در میان آن جوی بارها با آب وافر جاری سازی یا توری که خودت گویی آسمان را پارچه پارچه بر ما فرو داولی یا خدا و فرشتگان را روی ما بیاوری یا خانه آراسته از زر داشته باشی یا به با آسمان بالا روی و به با این بالا رفتنت ایمان نمی آوریم تا بر ما کتابی نازل کنی که آن را بخوانیم بگو او است پروردگار من آیا من جز بشری هستم که به هیث پیامبر فرستاده شدم؟ در هنگامی که به مردم هدایت آمد ایشان را از ایمان آوردن باز نداشت مگر اینکه گفتند آیا خدا بشری را به حیث پیامبر فرستاد بگو اگر در زمین فرشتگانی می بودن که با آرامش آمد و شد می داشتند، یکیناً بر ایشان از آسمان فرشته را به حیث پیامبر نازل می کرده. بگو خدا کافی است که میان من و شما گواه است بگمان او به حال بندگانش آگاه و بیناست کسی را که خدا رهیاب می سازد پس هم او رهیاب واقعی است و هر کس را که او گمراه می سازد، پس بر ایشان جز خدا کارسازانی را نخواهی یافت و در روزی قیامت ایشان را بر روی هایشان نیگونسار انگیزیم و نابینا گنگ و کرمی باشند جای ایشان روزخ است هر باری که زبانه آتش خرونی نشیند بر ایشان شعله آتش را می افزاید. این جزای ایشان است و این اینکه به آیات ما کافر شدند و گفتند آیا هنگامی که مشتی از استخانها شویم و پوسیده گردیم باز هم به با آفرینش تازه برانگیخته می آیا نمی بینند خدای که آسمانها و زمین را آفرید قادر است تا مثل آنها را بیافریند و برای ایشان نیاد را مقرر نموده که در آن شکی نیست ولی ظالمان جز ناسپاسی را نپذیرفتند؟ بگو اگر شما مالک خزانه های رحمت پروردگار من می در آن وقت از ترس به مصرف رسیدن آن بخیلی می کردید و انسان واکن سخت یعنی بخیل است. و به گمان با موسی نوح نشانه هم دادیم. از بنی اسرائیل بپرس هنگامی که برای رهنمایی ایشان آمد فرعون با او گفت ای موسی، من یقینا تو را جادو کرده شده می پندارم یعنی گمان می کنم که ترا جادو کرده هند. موسی گفت تو خوب میدانی که اینها را در حالی که دلایل روشن هستند، جز پروردگار آسمان ها و زمین نفرستاده است و بیگمان من من را ای فرعون نابود خواهند نمیدوردن پس فرعون خواست ایشان را از زمین بیرون راند ولی او و همراهانش همرا غرق خرق و بعد از آن به بنی اسرائیل گفتیم در این سرزمین مسکن گزینید پس چون وعده اخرت یعنی روز قیامت فرا رسد شمایان را در هم آمیخته می‌آوریم ما قرآن را به حق نازل کردیم و به حق نازل شد و نفرستادیم استادیم تو را بشارت دهند و بیم دهند و قرآن را به تفریق قسمت به قسمت فرستادیم تا آن را با درنگ یعنی قسمتی بعد از قسمت دیگر به مردم بخانی و آری به همین کیفیت آن را نازل کردیم بگو خواه به آن ایمان آرید یا ایمان نیارید بگو من کسانی که پیش از این به ایشان علم داده شده بود چون به ایشان این قرآن خوانده شود برزنخای یعنی روی خیش به سجده و می گویند منازه هست پروردگار ما براستی که وعده پروردگار ما بجا شده است. برزنه یعنی روی خیش می افتند گیریه می کنند و خشو و فروتنیشان فیزون می گردند. بگو خدا را بخانید یا رحمان را بخانید هر کدام را بخانید نامهای نیکو از آن اوست و نمازت را نه با آواز بلند بخوان و نه هم با آواز آهسته و در بین این دو راه میانه را اختیار کن و بگو ستایش خدای راست که برای خود فرزندی نگرفته و در پادشاهی شیعی که ندارد و برای او کارسازی که از ضلت او را و نیاز نیست و او را به بزرگی یاد کن بزرگی بس شکوهمندی